آرزو انصاری و بورد. در زمان بسیار دور دو جنگجو زندگی می که هر دو آشق یه زن شده بودند، یه زن زیبا. برخلاف خلاف جنگجوهای اون زمان که به خاطر تصاحب کردن هر چیزی با همدیگه می جنگیدند، اون دو نفر این کارو نکردند، چون از جنگجوهای واقعی بودند و برای همدیگه احترام زیادی قائل می شدند، و نمیخواستن به خاطر هیچ زنی با هم بجنگن. اون دو نفر شغل مشابهی داشتن و آهنگر بودند. در اون زمان مردم به دنبال کسب و تجارت بودند و هر مردی در یه حرفه ای استاد بود. سیتا گفت: هر کدوم از ما که تونست بهترین کار آهنگری رو به نمایش بذاره، میتونه اون زن رو تصاحب کنه. بلکبورد گفت: قبول می پس اجازه بده هر کدوم سه کار انجام بدیم. هر که اون کارا رو بهتر انجام داد میتونه صاحب اون زن بشه و من نوبت اول رو به تو میدم. تو میتونی شروع کنی؟ سیتاک گفت بسیار خوب. حالا که تو اولین نوبت رو به من میدی اگه یه روزی کارمون به نزا کشید من هم اولین نوبت رو به تو میدم و تو میتونی اولین زربه رو بزنی؟ سیتاک شروع کرد و طول نکشید که تو کوره آهنگریش مقدار بسیار زیادی گندم ساخت و برای بلک‌برد فرستاد. بلک‌برد هم پس از تلاش زیاد مرغ و ای ساخت که تمام گندم‌های سیتاک را خوردند. سیتاک دوباره دست به شد و روباهی بزرگ ساخت که مرغ و جوجه‌های بلک‌برد را خورد. من باختم. این را بلک‌برد گفت و ادامه داد. اجازه میدم اون زن مال تو باشه. سیتاک زن رو با خودش برد و با هم به یک کشتی رفتند و پس از برافراشتن بادبانها سفرشون را آغاز کردند. دریا به شدت متلاتم و طوفانی بود و موجهای سهمگین از هر سو به کشتی میخورد. سیتاک با شکافتن امواج خروشان همچنان به سفرش ادامه میداد. تو اون لحظات که خورشید آروم آروم پشت تپه های دوردست محو میشد ناگهان سیتاک جزیره کوچیکی رو درست مقابل خودش دید زمانی که کاملا به جزیره نزدیک شد سکان کشتی رو به طرف اسکله هدایت کرد تا اینکه سینه کشتی آرام به روی خشکی خزید هوا کاملا تاریک شده بود که سیتاک از کشتی خارج شد و به ساحل قدم گذاشت آتیشی روشن کرد و غذای لذیذی برای خودش و هم سرش محیا کرد. اون در اونجا قصری با شکوه ساخت. قصری که هیچ ستون و پایه ای زیرش دیده نمیشد. قصری که هیچ جای دنیا کسی نظیرش رو نساخته بود. اما نمیدونست دونست که این قصر رو کجا ساخته. اونجا سرزمین فین مكول بود. یک روز که فین از قصرش خارج شده بود، قصری بسیار زیبا رو در کنار ساحل دید و بسیار متحیر شد. او یکی از یارانش به اسم کنان معل را صدا زد و گفت برو ببین چه کسی بدون اجازه من این قصر رو ساخته؟ وقتی کنان به درون قصر رفت و زن سیتاک رو دید به او اظهار عشق کرد. در همین موقع سیتاک از راه رسید و چنان زربه ای به گوش کنان زد، که اون نقش زمین شد بعد اونو از قوزک پاهاش گرفت و بالای سرش برد و دیوانه وار چرخوند و به جایی که از اون اومده بود پرتاب کرد فین گفت کنان آیا صدمه دیدی کنان که گیج و مدهوش بود به سختی جواب داد نمیدونم چی شد اما مثل اینکه فعلا زنده ام و ادامه داد مردی که اون قصر رو ساخته برای شما پیغام فرستاده که آماده است با 300 مرد از روبرو، 300 مرد از طرف چپ و 300 مرد از طرف راست به جنگه و برای کشتن همه اونها فقط یه روز براش کافیه. در ضمن اون زن زیبایی داره که من تا به حال زنی به زیبایی اون ندیدم. فین حیرت کرد و پس از کمی تأمل به سر تاس و بیموی کنان نگاه کرد و گفت: من حتم دارم اگه سرت تاس نبود بزرگترین زنباره دنیا می شدی. سپس رو به گلمر کرد و گفت گلمر به قصر برو و اخبار اون مرد مردو برام بیار. گلمر به قصر رفت و به سیتاک گفت فین مک کسیه که اینجا متعلق به اونه. اون منو فرستاده تا تحقیق کنم که چرا شما این قصر رو بدون اجازه او در سرزمین فنلاند ساختین. سیتاک گفت به فین بگو که فردا همه برای شام به اینجا بیاین. اگه اون بخواد پولی بابت اجاره زمین بگیره من با رضایت کامل قبول میکنم و میپردازم. روز بعد فین و گروهش به قصر سیتاک رفتن. غذای بسیار خوبی هم آماده شده بود. به محض اینکه که اونا نشستن چشمای فین به جامی زیبا و با ارزش افتاد و رو به سیتاک کرد و گفت آیا این جام من نیست که تو داری؟ سیتاک جواب داد آیا هیچ کس دیگه ای نمیتونه جامی مثل جام تو داشته باشه؟ فین گفت فکر کردم این جامیه که من سالها پیش گم کردم چون خیلی شبیه اونه اون جامو کجا گم کردی فین؟ پاسخ شنید اونو تو ساحلی در کری گم کردم در واقع زمانی که مسلح نبودم و تنها هم بودم پنج جنگجو اونو از من گرفتن سیتاک گفت اگه جام تو پیدا شدنی باشه اونو برات میارم و با صدایی بلند گفت فعلا بنوشیم پس از آنکه کمی نوشیدند و صحبت کردند، سیتاک از جا بلند شد و فین و یارانش را ترک کرد. زمانی که از قصر خارج شد، به سرعت دوید، با پرش‌های بلند از تپه‌ها عبور کرد و با جست و فراوان از کوه‌ها و دره‌ها گذشت تا به ساحل کری رسید. همون جایی که فین جامشو گم کرده بود، چشم های سیتاک به هر طرف میچرخید و کوچک‌ترین چیز از نظرش پنهان نبود. یکم دورتر پنج جنجو رو دید که در حال نوشیدن بودند. در یک چشم به هم زدن سرهای هر پنج نفر رو از تنشون جدا کرد و روی ماسه ها انداخت و با جامی در دست به قصر بازگشت و رو به فین کرد و گفت: آیا این جام تو نیست که گم کرده بودی؟ کجا پیداش کردی؟ سیتا گفت: همون جایی که گم کرده بودی. من اون پنج جنجو رو کشتم، همون کسایی که جام به زور از تو گرفته بودند. فین با حیرت گفت: راستی؟ و با تعنی ادامه داد، من دونده ای دارم که هیچ کی تو دنیا نمیتونه به خوبی اون بدوه، تصور میکنم اگه او هم بود نمیتونست حتی نصف راهو بره، تو چطور تونستی تو این فرصت کم این کار را انجام بدی؟ سیتاک گفت، البته اگه من در این دنیا نباشم، گمان میکنم دونده شما هرگز نمیتونه به خوبی من بدوه، فین گفت، بسیار خوب. من در کریک کسانی دارم که در حال درست کردن یک کشتی برام هستند. حاضرم جام خودم رو با جام تو شرط ببندم که دونده من نامهای برای کشتی ساز میبره و زودتر از تو برمیگرده. سیتاک شرط رو پذیرفت و فین دو نامه نوشت. یکی را به کیلتا که بهترین دونده فنلاندی بود داد و نامه دیگر را به سیتاک سپرد. اونا بیدرنگ دویدند. ابتدا در کنار هم تا به یک جنگل بزرگ رسیدن. سیتاک در حال گذشتن از جنگل بود که ناگهان خاری بزرگ تو پاش فرو رفت. سعی کرد خار را از پاش بیرون بیاره، اما هرچی تلاش کرد نتونست. سپس رو به کیلتاک که تازه به او رسیده بود کرد و گفت: من به خونه میرم تا شاید همسرم بتونه این خار را از پام در بیاره. کیلتاک همچنان که می‌دوید گفت: در این صورت خیلی راحت‌تر شکستت میدم. و سیتاک همچنان که لنگان لنگان به قصر برمیگشت گفت: دونده خوبی هستی اما نمیتونی اون بالاخره به قصر رسید و همسرش تونست خار را از پاش در بیاره سپس بیدرنگ خارج شد و چون باد دوید و دیری نکسش که به کیلتا رسید و همچنان که نگاه‌های حیرت زده کیلتار به او بود از اون گذشت تا به ساحل کری رسید پیش کشتی ساز رفت نامه رو بهش داد و جوابش رو گرفت تا به فین برسونه در ضمن یک دکل کشتی هم از کشتی ساز خرید و به راه افتاد اون تقریبا نصف راه و برگشته بود که کیلتا رو دید. کیلتا بسیار خسته و فرسوده به نظر می رسید. سیتاک کیلتای فرسوده رو روی شونش انداخت و همانطور که اون روی یک شونش و دکل کشتی روی شونه دیگش قرار داشت به قصر خود نزد فین و یاراش برگشت. زمانی که به قصر نزدیک شد کیلتا به زبون اومد و گفت حالا اجازه بده راه برم. وقتی که سیتاک به قصر رسید فین و یارانش ناباورانه به اون نگاه میکردند. آنها حتی تصورش هم نمی که اون به این زودیا برگرده. سیتاک دکل کشتی رو زمین گذاشت و جواب نامه رو به فین داد. شب بعد فین مکول که هنوز متعجب بود انگشت شست خودش رو در دهنش گذاشت و روبروی آینه ایستاد و همونطور که انگشتش رو می در آینه گفت در تمام نقاط دنیا هیچ مردی وجود نداره که حتی نصف ارزش های سیتاک رو داشته باشه. مدتی گذشت تا اینکه جنگی بین فین و پادشاه یونان در گرفت. فین ناوگان کشتیاش رو آماده کرد تا به سرزمین یونان حمله کنه. و چون سیتاک را بسیار ورزیده و پرتوان می دید، از اون خواهش کرد تا در این جنگ همراهیش کنه. سیتا گفت: من بدون اجازه همسرم نمیتونم با تو بیام. همسرم هر هفت سال یه بار موهای خودش رو شونه میزنه و الان در حال شونه زدن موهاشه اگه در برابرش زانو بزنی و التماس کنی شاید اجازه بده که با تو در این سفر همراه بشم. فین گفت: من تا به حال نزد هیچ زنی فروتنی و توازن نکردم، اما حالا این کار رو میکنم سپس نزد همسر سیتاک رفت، زانو زد و خواهش کرد تا اجازه بده سیتاک با اون بره. همسر سیتاک همچنان که موهای انبوهش و شونه میزد گفت: در واقع مایل نیستم سیتاک با تو بیاد. اگر غیر از تو هر کس دیگه این خواهش را از من میکرد رد میکردم. به هر حال تو باید قولی به من بدی. فین پرسید: اون قول چیه؟ همسر سیتاک گفت: تو بالای کشتی پرچم سفیدی برافراشتی و این خیلی خوبه. اما اگر همسرم در جنگ با یونانیان کشته بشه، اون وقت باید وقتی به اینجا برمیگردی، پرچم سیاه بالای کشتی نصب کنی. فین هم قول داد که این چنین کنه. سپس شادمان سیتاک را با خودش به کشتی شخصیش برد. فین پس از حرکت لحظه‌ای توقف نکرد تا سرانجام به سرزمین یونان رسید. در اونجا قولی بود که بزرگترین قول یونان نامیده میشد. این قول ترین قول یونان که جسه‌ی بسیار بزرگ و حیرت‌آور داشت، اولین کسی بود که فین باید با اون نبرد میکرد. وقتی که سیتاک موضوع رو فهمید، فین را ترک کرد و ناپدید شد و پیش قول بیشاخ و دوم رفت. غول ها داشت از پنجره بیرون رو نگاه میکرد که ناگهان مشت محکم سیتاک چنان به صورتش خورد که تمام دندوناش تو دهنش ریخت. گول بزرگ همچنان که دستاش بر دهن خونالودش بود گفت چون تو تونستی اولین ذر به من بزنی هرچی از من میخوای بگو و در همان حال ادامه داد حالا از من چی میخوای؟ سیتاک گفت نان، نوشیدنی و خانه قول بزرگ گفت باشه اونجا یه نونوا، یه مغازه‌دار و یه مسافرخانه‌دار خوب هست. اونا هر چیزی که مایل باشی به تو میدن. سیتاک به طرف اونا رفت، اما اونا درشون به روی اون بستن. او چنان مشتی به در زد که در از جا کنده شد و تکه های آن به اطراف پرید. نانوا وحشت زده گفت: من برای هر کدوم از رئیسان فقط یه قرص نون دارم. دار گفت: منم برای هر کدوم از اونا مقداری نوشیدنی دارم، اما برای تو یک سف شربت خوب دارم. سیتاک گفت شربت خوب و ادامه داد کفهای اونو بگیر مغازدار پیمانهی برداشت تا کفهای شربت رو بگیره اما اونو روی سرش گذاشت سیتاک وقتی اینجوری دید چنان زربهی به سر مغازدار زد که پیمانه خورد شد و تکه هاش اونو کشت بعد سی قرص نان و بشگهی بزرگ نوشیدنی برداشت و نزد فین و یاراش رفت اون شب اونا جشت گرفتند و تا صبح نوشیدند زمانی که هنوز هوا کاملا روشن نشده بود سیتاک به خونه قول بزرگ رفت نعره‌ی رداسا کشید و قول را به جنگ دعوت کرد قول بیرون آمد و گفت چی میخوای؟ سیتاک گفت جنگ اونا به یکدیگر حمله ور شدند و هفت شب و هفت روز جنگیدند اما هیچ کدوم نمیتونستن برتری خودشونو نشون بدن و دیگری رو شکست بدن دیگه رمقی براشون باقی نمونده بود که قول گفت بهتر جنگ رو برای یک روز متوقف کنیم و سیتاک نیز قبول کرد چون جراحت بسیار برداشته بود و تمام اعضای بدنش درد میکرد. فردای اون روز سیتاک به وسط جنگل رفت و با علفها و گیاهای گوناگون زخمهای خودش رو معالجه کرد و در همان حال که از جنگل برمیگشت، خونه کوچیکی دید که گیاهای سبزی اون رو پوشونده بودند. به طرف خونه رفت. تو اون خونه کسی زندگی نمیکرد جز یک پیرمرد قد کوتاه که قبلا پیشکار قول بود. پیرمرد سیتاک را شناخت و گفت: پروشومادس سیتاک، پسر پادشاه نیکی شما مبارزه طولانی و سختی با داشتی اما باید بگم که هیچ چیز این قول گردن کلوف رو نمی‌کشه مگر شمشیر خودش و شاید من بتونم اون شمشیر رو به دست بیارم سیتاک گفت اگه اون شمشیر رو برام بیاری من تو رو پادشاه این سرزمین می‌کنم پیرمرد گفت حالا که اینطوره هر جور شده شمشیر رو برات خواهم آورد اینو گفت و فوراً رفت تا به خونه گول بزرگ رسید و به اون گفت من امروز مردی رو که تو هفت شبانه روز با اون جنگیدی کشتم سپس اونو آتیش زدم و هفتون سنگ روی مزارش ریختم گول خوشحال شد و گفت بسیار عالیه حالا که یک هفته بسیار خسته کننده رو پشت سر گذاشتم بهتر برم و حسابی بخوابم پیرمرد به محض اینکه دید غول خابیده شمشیرشو دزدید و به سیتاک رسوند روز بعد پس از یک روز استراحت سیتاک به خونه قول رفت و دوباره او را به جنگ تلبید قول که دید سیتاک هنوز زنده است با خشم به سراغ شمشیرش رفت و چون اونو پیدا نکرد شمشیر دیگه ای برداشت و بیرون اومد اما وقتی شمشیر خودش رو در دست سیتاک دید از ترس پا به فرار گذاشت و در همان حال گفت من حاضرم با فین و فینیان ایرلند صلح کنم سیتاک گفت من با تو صلح کنم. و به طرفش دوید و قبل از اینکه قول بتونه حرکتی کنه سرش را از تنش جدا کرد. بعد پیر مرد رو که سالها پیش کار قول بود صدا زد و گفت از این به بعد تو پادشاه این سرزمینی. سپس ای کلوفت از درختی کند و اونو از میان سر قول عبور داد و به سوی فین بازگشت. اونا وقتی سیتاک رو دیدن که سر قول روی شونشه و به طرفشون میاد بسیار خوشحال شدند و به اون تبریک گفتند. حالا که قول بزرگ یونان کشته شده ما جنگو بردیم و با خیالی راحت به ایرلند برمیگردیم. بادبانها را برف و به طرف سرزمین خودشون حرکت کردند در حالی که دریا هنوز طوفانی بود آنها مینوشیدند و دست جمعی آواز می خوندند و پیش میرفتند. صبح روز بعد هنگامی که سیتاک از خواب بیدار شد به فین گفت من دیشب خواب بدی دیدم فین پرسید چی دیدی گفت خواب دیدم بلکبرد پسر پادشاه اسکاتلند می‌خواد امروز منو بکشه تا همسرم رو تسخوب کنه فین گفت این فقط یه خوابه اما اگه بیاد سرش رو از تنش جدا میکنم سیتاک گفت بلکبرد قسم خورده که سر من رو از تن جدا کنه و من هم قول دادم که بدن اون رو به دو نیمه کنم از سفرشان مدت زیادی نگذشته بود که روزی بلکبرد سوار بر عرابه آتشین از آب گذشت و خودش رو به کشتی فین رسوند و با شمشیری که تو دستش بود به سیتاک حمله ور شد سیتاک هم شمشیرش رو کشید و جنگ آغاز شد شمشیرای اونا تو هوا میچرخید که ناگهان شمشیر بلک‌برد بر گردن سیتاک فرود اومد و سرش را از تنش جدا کرد و در همون لحظه سیتاک هم بلک‌برد را از وسط نصف کرد. فین دو نیمه پیکر بلک‌برد را با لگدی به دریا انداخت. سپس سر و بدن سیتاک را به آرامی بلند کرد و در انبار کشتی گذاشت. وقتی که به بندرگاه ایرلند رسیدند، همسر سیتاک روی عرشه کشتی شخصی خود منتظرشون بود. اون پرسید پس سیتاک کجاست؟ فین پاسخ داد؟ در قسمت پایین انبار آیا اون زنده است یا نه؟ فین گفت گفتنش بسیار سخته اما سیتاک مرده زن سیتاک گفت ما قرار گذاشته بودیم که اگه سیتاک کشته شد تو بالای دکل کشید پرچم سیاه نصب کنی چرا به قولت عمل نکردی؟ فین گفت چون ما در جنگ پیروز شدیم من نمیتونستم پرچم سیاه بالای کشتیم نصب کنم زن سیتاک به کشتی فین رفت و سر و بدن همسرش رو برداشت و به کشتی خودش برد بعد بادبان‌ها با رو برافراشت و تنها با همسر مرده خودش راه سفر رو در پیش گرفت زمانی که خورشید آخرین نورهای طلایی‌اش رو به زمین میتابوند جزیره ای از دور نمایان شد همسر سیتاک کشتی را با مهارت به جزیره هدایت کرد وقتی به جزیره نزدیکتر شد قصری تو همون نزدیکی دید وارد قصر شد. اونجا دو جنگجو رو دید که روی صندلی نشسته بودند. یکی از اون‌ها بلند شد و صندلی خود رو به زن داد. زن سیتا گفت: آیا در این قصر هیچ زنی زندگی نمیکنه؟ یکی از جنگجوها گفت: در حقیقت نه. در این جزیره قول‌هایی زندگی میکنند که به ما اجازه نمی دن ازدواج کنیم. همسر سیتا گفت: اگه مردی که من اونو می میشناسم اینجا بود، اجازه نمیداد این غولها به زندگی خودشون ادامه بدن. یکی از جنگجوها گفت اون مرد کجاست؟ اون داخل کشتی منه اما با سری از بدن جدا شده اونا گفتن ما میتونیم اونو دوباره به زندگی برگردونیم زن گفت اگه بتونید این کار را انجام بدید من به شما قول میدم همین فردا شر این غولها را از سر شما کم کنه اونو مرهم شفا درست کردند و نزد سیتاک رفتند و اونو به گردن بریده اون مالیدن سیتاک سلامتی خودش رو به دست آورد و دوباره چون قبل قوی و سر حال شد اما چون آنها با عجله کار کردند سر سیتاک رو برعکس گذاشتند یعنی صورتش رو به پشت قرار دادند زن سیتاک فریاد کشید وای بر من اگه اون مرده بود بهتر از این بود یکی از جنگجوها گفت صبر داشته باشید خانوم ما سر اونو درست میکنیم." و دیگری با یک ضربه شمشیر تیزی که داشت سر سیتاک رو دوباره از تنش جدا کرد و بعد اونو درست در جای خودش قرار داد و سیتاک دوباره سلامتیش رو باز یافت جنگجوها از اینکه سیتاک دوباره زنده شده بود بسیار خوشحال شدند اون شب سیتاک و همسرش از ماجراهای شون برای جنگجوها گفتند صحبت‌های آشقانهٔ فینیها بسیار رمانتیکه و انسان رو به خواب خوش فرو میبره صبح روز بعد سیتاک خیلی زود بیدار شد و به اون دو جنگجو گفت اون غولا رو به من نشون بدین اونا گفتن ما جرعت نزدیک شدن به غولها رو نداریم اونا در اون قصر پایین اون تپه زندگی میکنند سیتاک گفت بسیار خوب سپس به سمت قصر غولها رفت و به درهای بزرگ اونا رسید همچنان که جلوی دروازه ها قدم میزد قول ها را به مبارزه می دیری دیرینگزش که قولا بیرون اومدند و گفتند تو کی هستی و چی میخوای سیتا گفت میخوام کمی با شما شوخی کنم من میخوام سر ستن از شما رو جدا کنم اول از همه سه نفر از بهترین های خودتون بفرستین ناگهان یکی از قول ها پایین پرید و طولی نکشید که سرش از بدنش جدا شد در همین لحظه دو قول خشمناک به سیتاک حمله ور شدند و تا غروب خورشید جنگیدند تا اینکه سیتاک هر دوی اونا رو کشت. دیگه هوا کاملا تاریک شده بود. سیتاک سر قولا رو روی شونش گذاشت و از میان تاریکی به خانه دو جنگجو بازگشت. صبح روز بعد سیتاک و همسرش از دو جنگجو خداحافظی کردند و به کشتی خودشون رفتند تا به ایرلند برگردند. اتفاقا طوفان بسیار سخت و خطرناکی می‌وزید. به طوری که هیچ کس رفتن به دریا رو نداشت، سیتاک دل به دریا زد و سفرش رو آغاز کرد، دریا بسیار طوفانی بود و کشتی هر لحظه تا سطح آب خم می شود. اما سیتاک همچنان پیش میرفت. ناگهان وال بسیار بزرگی زیر کشتی اومد و اون روی پشتش قرار داد و حرکت کرد، مثل این بود که وال تو ساحل ایستاده چون هیچ تکانی نمیخورد. وال بزرگ لحظه ای از شنا کردن دست نکشید تا اینکه به سرزمین قرب رسید در اونجا کشتی رو آروم روی دریا نشوند و رفت سیتاکو همسرش کشتی رو محکم به جایی در ساحل بستن و قدم زنان به راه افتادند هوا کاملا تاریک شده بود که خونه بزرگی رو در اون طرف جاده دیدند همسر سیتاک گفت برو بپرس که آیا اتاقی برای اجاره دارن سیتاک جلو رفت و زربه ای به در زد. مرد پیری با موهای خاکستری بیرون اومد و پرسید که چی میخواین؟ سیتاک گفت، امشب جایی برای خودم و همسرم میخوام. پیرمرد مرد گفت، آقای خونه تشریف نداره، اما من یه خونه کوچیک کمی پایین از اینجا دارم، شما میتونید شب رو در اونجا بگذرونین. سیتا و همسرش به طرف خانه پیرمرد راه افتادند پس از اندکی راه رفتن شعله آتیشی آتش به کنار آتیش رفتند و همونجا موندند تا اینکه بعد از نیم ساعت پیرمرد اومد او غذای خوبی آماده کرد و رخت خوابی هم به اونا داد صبح زود پیرمرد از خواب بیدار شد که بره سیتا هم بیدار شد و از اون پرسید کجا میری بهتر ما هم دیگه بریم پیرمرد گفت شما میتونید کمی دیگه بخوابید من میرم و برمیگردم و بعد اونا رو ترک کرد و به خانه بزرگ نزد سرور خودش رفت و به اون گفت سرورم در خانه من زن و مردی میهمان هستند من تا به حال زنی به زیبایی اون زن ندیدم نجیبزاده اشرافی به دنبال مرد کور دانایی فرستاد که در همون حوالی بود و از اون پرسید که چطور میتونه اون زن زیبا رو به همسری خودش در بیاره مرد کور گفت اون مرد از قدرت فوقلادهی برخورداره اون میتونه هر مردی رو شکست بده شما امشب اونا رو دعوت کنین من گیاهی دارویی در نوشیدنی اون حل میکنم که اونو 24 ساعت میخوابونه شما میتونین اونو محکم ببندین و سرش رو از تنش جدا کنین تنها با این روشه که میتونین اون زن رو مال خودتون کنین پیرمرد به خانه خود برگشت و هم همسرش رو نزد مرد اشرافی آورد مرد اشرافی تا چشماش به زن افتاد یک صد دل, دل عاشق شد سپس رو به سیتاک کرد و گفت من خیلی خوشحال میشم اگه امشب شما رو به شام دعوت کنم سیتاک تشکر کرد و گفت که چطور یک وال بزرگ کشتیشون رو تا اون کشور آورده نجیب زاده گفت من اون والو میشناسم او پسر های اسکاتلند و قدرت عجیبی داره مردی به اسم سیتاک پسر پادشاه نیکی اونو رو کشته سیتاک پرسید آیا این عجیب نیست که وقتی قدرت جادویی داره کسی اونو رو بکشه نجیبزاده که نمیدونست این خود سیتاکه که با او حرف میزنه گفت سیتاک خود شیتون رو هم میکشه وقتی غذا روی میز چیده شد اونا خوردند و نوشیدند سیتاک قبل از اینکه که دومین ظرف نوشیدنی رو بنوشه ناگهان به زمین افتاد نجیبزاده گفت اونو محکم ببندین و تبرم رو آماده کنین تا سرش رو ببرم. پس از اینکه که سیتاک رو بستند، نجیبزاده تبر رو بالای شونه برد تا ضربه بزنه. ناگهان همسر سیتاک فریاد زد اونو نکشین، اونو به دریا پرت کنید. نجیبزاده گفت بسیار خوب، اونو به دریا میندازیم. همسر سیتاک خم شد و انگشتری به یکی از انگشتهای سیتاک کرد. آن انگشتر قدرت واقعی میداد. به هر حال آن انگوشتر نمیگذاشت که سیتاک خفه بشه و یا آسیب ببینه و حتی نمیگذاشت بمیره. اونا سیتاک رو بالای یک سخره که تا دریا پیشرفته بود بردند و با ضربه اونو به درون امواج انداختند. اون طرف سخره بوته ای بزرگ روییده بود و سیتاک میان و آن بوته افتاد و همونجا گیر کرد. در اون بوته دو لاشخور با دو جوجهشان زندگی میکردن سیتاک جایی افتاد که به آشیانه لاشخورها نزدیک بود بعد از مدت زیادی به هوش اومد ولی نمیتونست به فهم کجا بوده و کجاست اون بسیار گرسنه بود و دو لاشخور پیر رو نگاه میکرد که به جوجه هاشون قضا میدادند. جوجه ها دهن خودشون رو باز می کردند و والدینشون غذا رو در دهنشون می زشتن. سیتاک با دست و پای بسته گردن خودش رو دراز می کرد و دهانشون مانند جوجه ها باز نگه می داشت و تکه هایی از غذا رو به دست می آورد. یک روز والدین جوجه ها به آشیانه نیامد و سیتاک گرسنه بود یکی از جوجه ها رو خورد. روز بعد هم لاشخورها خورها نیامدند و سیتاک جوجه دوم را نیز خورد و نگیش برطرف شد. غروب همون روز فین و یاراش با کشتی از زیر اون صخره عبور میکردند. فین که متوجه اون آشیانه بزرگ شد، به گلمر و کنان گفت که برید و ببینید آیا چیز عجیبی تو اون آشیانه وجود داره یا نه. اونو از کشتی پیاده شدند و بالای سخره رفتند و سیتاک را در آشیانه دیدند، اما اونو نشناختند و گمان کردند که یک مرد جنگلیه. اونا سیتاک رو همونطور با دست و پاهای بسته بکشتی بردند فین پرسید تو کی هستی؟ سیتاک جواب داد دست و پای منو باز کنید، صورت منو اصلاح کنید و به من لباس بپوشونید. اون وقت به شما میگم من کی هستم. اونا اون چی رو که سیتاک خواست انجام دادن. سیتاک بدن خود رو کش داد، خمیازه ای کشید، خودش رو تیکون داد و گفت حالا دیگه من رو به جا نمیارید؟ من سیتاکم، پسر پادشاه نیکی. فین گفت اوه دوست خوبم، ما فکر میکردیم تو مردی. سیتاک پاسخ داد اگه هم مرده بودم حالا دوباره زنده شدم و بعد تمام ماجرا رو از وقتی که بلاک در کشتی فین سرش رو از تنش جدا کرد تعریف کرد فین گفت همین حالا به ساحل میریم و حساب اون نانعجیب زاده رو کف دستش میذاریم سیتاک گفت فین تو هدیه ای از دانش داری به من بگو حال همسرم چطوره فین روبروی آینه ایستاد و انگشت دانش خود رو در دهان گذاشت و جوید اون در همین حال زن سیتاک رو دید که در قصر آن نجیبزاده بود. زن سیتاک با نجیبزاده قرار گذاشته بود که با کسی ازدواج نمی کند مگر اینکه یک سال و یک روز از وقتی که سیتاک را به دریا انداخته بودند بگذره. سیتاک گفت: اگر اینطور باشد، من با شما به ایرلند برمیگردم تا بتوانم قبل از اینکه یک سال و یک روز تمام شود، همسرم و دوباره به دست بیارم، بعد هم با آن نجیبزاده شوخی خواهم کرد. سیتاک با فین به سرزمین ایرلند بازگشت. آنها روزها خوردند و نوشیدند تا اینکه یک سال گذشت و در یک روز باقی مانده سیتاک یک کشتی از فین به امانت گرفت و حرکت کرد. سیتاک نه لحظه ای درنگ کرد و نه توقف کرد تا اینکه به سرزمین غرب رسید. اون یک راست به طرف خونه همون پیرمردی رفت که سال پیش یک شب با همسرش در اونجا مهمون بود. پیرمرد سیتاک را نشناخت چون اون لباس فروت زنها رو پوشیده بود و یک فروت هم با خودش داشت. سیتاک پرسید: چه خبره؟ پیرمرد جواب داد امشب عروسی سرورمه و تو نه تنها تمام شب را میخوری و مینوشی بلکه در آخر هم به خاطر فرود زدن پاداش خوبی میگیری. سیتاک گفت آیا کیسه ای داری که به من بدی؟ پیرمرد گفت یک گونی پشمی خالی دارم میتونی اونو برداری؟ سیتاک گونیو برداشت و در تاریکی شب به قصر رسید. اون جلوی قصر مقابل در بزرگ ایستاد و فلوت زد. نجیبزاده بیرون اومد و اونو به درون قصر راه داد. سیتاک همچنان که فلوت میزد، از روی میز لقمهی بزرگ برداشت و در گونی گذاشت و اونو به طرف خونه پیرمرد پرتاب کرد. همسرش فهمید که اون مرد فلودسان سیتاک شوهرشه و به اون قدری نوشیدنی داد. اشرافزاده وقتی دید که عروس به فلودسان نوشیدنی میدهد، به قدری ناراحت شد که یک سیلی به او زد. در همین لحظه سیتاک فلوت را به گوشه‌ای پرتاب کرد. اشرافزاده را گرفت و بالا سرش برد و اونو چنان به زمین زد که صدای شکستن استخونهاش در قصر پیچید. بعد با بقیه مهمانها زد و خورد کرد تا اینکه بسیاری از اونا رو کشت و بسیاری رو مجروح کرد. کشیشی که برای ازدواج اشرافزاده و زن سیتاک اومده بود وقتی این صحنه ها را دید دو پا داشت دو پای دیگه قرض کرد و فرار را برقرار ترجیح داد صبح روز بعد سیتاک و همسرش به کشتی رفتند بادبانها و پرچم کشتی را برافراشتند مشتقانه حرکت کردند و از دریای مواج گذشتند تا اینکه صحی و سالم به ایرلند رسیدند و یاراش به آنها خوشامد گفتند و از آنها پذیرایی کردند سیتاک و همسرش بعد از این تا آخرین روزهای عمرشون شاد و خوشحال زندگی کردند و به هم عشق ورزیدند. پایان کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی می مهران نقطه m e m e r a n d o s t i نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o u s t نقط COم مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بستانی